اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجنا إلا ولا يخرجنا إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای پیامبر هر زمان خواستید زنان را تلاق دهید در زمان عده آنها را تلاق گویید زمانی که از عادت ماهان پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند و حساب عده را نگه دارید و از خدایی که پروردگار شماست بپرهیزید نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها در دوران عده بیرون روند مگر آن که کار زشت آشکاری انجام دهند این حدود خداست و هرکس از حدود الهی تجاوز کند به خیشتن ستم کرده تو نمیدانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم کند فا اذا بلغن اجلهن فا بمعروف او فارقوهن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 و چون اده‌ی آنها سرآمد آنها را به طرز نگهدارید، دارید یا به طرز ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده میشوند. و هر تقوای الهی پیش کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند و یا رزقه من حیث لا يحتسب و من يتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا و اورا از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد و هرکس بر خدا توکل کند کفایت امرش را میکند خداوند فرمان خود را به انجام میرساند و خدا برای هر چیزی ای قرار داده است ای من إن رتبه فعده نه سه تا لم یحذن و اولاد الاحمال اجله <مسؤال> نه آنان که از عادت ماهان معیوسند، اگر در وضع آنها از نظر بارداری شک کنید عدده آنان سه ماه است و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیدند و عد زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند و هر کس تقوای الهی پیش کند خداوند کار را بر او آسان میسازد. ذلک امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا این فرمان خداست که بر شما نازل کرده و هرکس تقوای الهی پیشه کند خداوند گناهانش را میبخشد و پاداش او را بزرگ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروا ولا تضرهم لتضيقوا عليهم وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَا آنها زنان متلغ را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید و مجبور به ترک منزل شوند و اگر باردار باشند نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما فرزند را شیر میدهند پاداش آنها را بپردازید و درباره فرزندان کار را با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید زن دیگری شیر دادن آن بچه را بروخته می لیون فقدو سعت من ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا إلا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا حانان که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند. خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی کند. خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهند. وكأین من قریة عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها, فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نكرا که بسیار شهرها و آبادیها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی كردند و ما به شدت به حسابشان رسیدیم و به مجازات کم نظیری گرفتار ساختیم فذاقت وبال امرها و عاقبت و امرها خسرا. آنها آثار سوء کار خود را چشیدند و عاقبت کارشان خسران بود اعد الله لهم عذابا شدیدا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا خداوند عذاب سختی برای آنها فراهم ساخته پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای خرد که ایمان آورده اید زیرا خداوند چیزی که مایه تذکر است بِأَمْرِ شُمَا نَازِلَ كَرِ رَسُولَ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ رسولی جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد احسن الله له رزقا رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می می‌کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند از تاریکی‌ها بسوی نور خارج سازد و هرکس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد، او را در باغهایی از بهشت وارد سازد که از زیر درختانش نهرها جاری است. جاودانی در آن میمانند و خداوند روزی نیکویی برای او قرار داده است.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 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا خُداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را فرمان او در میان آنها پیوسته فرود میآید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد.